در ستایش زندگان رادیومانی در سلسله برنامه از پیشگامان روشنگری در درهای اخیر ایران تقدیر و ستایش میکنند. در هر برنامه یکی از روشنگرانی که در تحول فکری و فرهنگی در برابر اندیشه های منسوخ دینی و فرهنگی نقشی کارا داشته از سوی آگاهان و کارشناسان مورد توجه قرار میگیرند. از نقد و بررسی آثار گرفته تا بیان خاطرات و نظرات. به صورت تک گفتار، نیز گرد و گفته بود. باید از پیشگامان خرد و روشنگری به هنگام زندگیشان سخن گفت. ستایش آنان آنگاه که دیگر نباشند نوع این مورد خواهد بود و بس. در ستایش زندگان برنامه است. در ستایش زندگی و امید، در ستایش روشنگری و خرد، برنامه ای در راستای نوزایی فرهنگی در ایران، رادیومانی صدای نوزایی فرهنگی در ایران، آنچه که دیگران به شما نمیگویند، ما به شما میگوییم. درود به شما بینندگان و شنوندگان این برنامه از کافه روشنگران و مانی هستم باراتون را آرزو دارم ما از سالها پیش در راژیومانی برنامه داشتیم به نام در ستایش زندگان و پاس داشتیم چند تن از هوشمندان، هوشیاران و کوشندگان مسائل ایران رو و بعد که دیگه منتقل شدیم سایت ما منتقل شد به جای دیگری و برنامه ما تصویری شد کاراما خیلی زیاد شد دیگه فرصت نداشتیم ادامه بدیم تا اینکه که هواکنون شما نخوصین برنامه رو پس از اون دوره در امروز خواهید شدیم و از این پس این که بتونیم ادامه بدیم و از زندگان و کسانی که در میان ما هستن و دارن با تمام نیرو میکوشند که روشنگری کنند و ثمر داده کارشون نتیجه داده از اونها در زمان زندگیشون سخن بگوییم و نظرات دیگران رو درباره اونها بشنویم اینکه ما ایرانی‌ها میترسیم از کسی که زنده ستایش کنیم می‌گوییم خب این ممکنه فردا بشه دشمن ما یا دیگه بشه رقیب ما یا هر چیز دیگه بعد ما از گفتهای خودمون پشیمون بشیم من چون چیزی باور ندارم ما درباره هر کسی سخن که درباره زندگی گذشته و امروز اوست و نه ما زمانتی برای زندگی آینده خودمون میدیم نه برای دیگران و گذر زندگی میتونه نظر رفتار و گفتار هر کس رو تغییر بده ارز کنم که سخن امروز بر سر یک ایرانی بهراستی میهندوست هست به نام هومر آبرامیان که بیگمان بسیاری از شما گرامیان با نام او اندیشه های او و کار او آشنا هستید او همواره از همراهان و همکاران رادیومانی هم بوده است هومر آبرامیان شخصیتی است که به زبان پارسی عشق میورزد و شاید یکی از بهترین پارسیگویان ایرانیست با وجودی که از آشوری های ایران هست اما پارسی را بهتر از هر کس دیگری که من تابعه اکنون دیدم سخن میگه دید و حتی در این زمینه یک واجنامه پارسی هم منتشر کرده سالها پیش در انترانات کتاب در آمریکا و واجنامه هجیمیست و براستی بسیاری از واژه ها رو خود آفریده و ارائه داده و وقتی هم که خودش سخن میگه آدم میبینه که چقدر روان و ساده از این واژه ها بهره میگیره و سخنش هم قابل درک و قابل دریافت و فهمه برای این برنامه من از چند تن از کسانی که او را میشناسند هم از نزدیک به هم از دور دعوت کردم که بیان در این برنامه شرکت بکنن و من دو گفتگو با آقای کومر با شخص خودش دارم درباره زندگی و کوشش های او و دیگری درباره عقاید و نظرات او و چشمنداش سیاسی که او برای ایران آینده میبینه و دو میز میزگرد هم خواهیم داشت با شخصیت های گوناگون و اینها رو طی دو سه هفته آینده شما خواهید دید خب من در این برنامه میخوام نخست از آقای کامران جمشیری برون برونمرزی زرتشتیان ایران که خودش هم به زبان پارسی بسیار گرایشمند و علاقمند هست آغاز بکنم به ایشون و آقای دکتر حسن کیازای که میشناسید خوش آمد میگن در وسط راه ممکن است که دوست دیگری هم به ما بپیونده که اگر آمد به شما خواهم شناساند آقای کامران جمشیدی آقای جانزاد عزیز خوش آمدید و شما آقای جمشیدی با هومر آشنایی نزدیک هم دارید، سالهاست و الان که خبشون در استرالیا است و دور ممکنه که دیگه مدت هاست شون ندیده باشید شما به طور کلی برداشتتون از این آدم، از این شخصیت که خیلی هم, هم برای شاهنامه کار کرده، برای استرالیا ایران کار کرده و تا اونجایی که من اطلاع دارم حتی نزدیکی فراوانی هم به آیین زرتشتی داشته و داره و بسیار به شخص زرتشت علاقمند بوده و هست شما احتمالاً در جریان همه این ایشون هستید من میخوام شما درباره او آغازه سخن بکنید بفرمایید سپاسگزارم، نخواست من هم درود میفرستم هم به شما هم به جناب کیانزاد و سپاسگزارم از اینکه هر روی این زمان رو فراهم کردید که دور هم بیایم و در مورد یکی از همون جگه خود شما در گفتگوی پیچگی داشتیم به خوبی گفتید یکی از دوردان های فرهنگ ما جناب ابرامیان سخنی بگیم شادمانم. سپاسکزارم. آری همونگونه که خودتون گفتید البته چندیست که ما به هر روی به دلیل دوری بشوند دوری راه از هم گفتگوی نداشتیم مگر نامه هایی گاهی وقتا دات ستت میشه. البته من به هیچ روی آن در واقع اون توانایی ایشون رو در پارسی گویی نداشته و ندارم یعنی خیلی کم پیدا میشن که ماننده ایشون باشن براستی و واجنامه ایشون رو البته من به صورت خود دفترش کتابش ندارم ولی به صورت مثلا فایده کامپیتری فایده دارم که همواره یکی از راهنماهای من هست هم برای آموختن و هم برای بهره بردن و از این کار بزرگ ایشون هم سپاس کذارم و همه کسایی که اومر رو ما به گونهی میشناسیم پی گرفتیم کاراشو و هم همه ارزششون ایشون رو باید بدانیم و میدانیم و کار شما هم است که به هر روی به ویژه این که همواره به ما گفتن و میشه وقتی زمانی که کسی رو ما از دست میدیم تازه به یادش میفتیم که ازش ارزش گذاری کنیم و قدردانی کنیم و چقدر خوب که بتونیم تا زمانی که هستیم عرض و ارزش رو بدونیم و این بسیار کار نیکیست آری من شاید زمانهایی که در پاریس بودم و انجمن اونجا رو که درم ساس و همسرشون این دو شاهد روانان بنیان گذاشتند از من یاری خواستند و من دستکم دو سال دو سال و نیمی در اونجا بودم و یاری کردیم تا این مرکز از زرتشتیان پاریس سخن میگی که زندگیات آپتین ساسانفر مدیریتش رو داشتن داشتند و زحمتش رو می پشیدن. درسته ده. و البته اونجا هم هم به نام نام های گوناگونی به خودش گرفته اون مرکز اون جایگاه هم مشکوب مرکز یا انجمن زرتشتیان به گونه ای هم به سراغ اون دفتر مشکوب مرکزی انجمن جهانی زرتشتیان و هم خب نام یک در واقع مرکز فرهنگی زرتشتیان ایرانیان بود که بر روی کارکرت های فرهنگی داشتیم اونجا از کلاس زبان پارسی برای دانش آموزان دانشویان گرفته تا نشستهای های دینشناسی، گاته فرهنگ و تا اونجا که میشد به هر روی کار فرهنگی رو در اون مرکز دنبال میکنم. به هر روی آنها این بودش که جناب هومر آبرامیان هم خب اونجا هم می اومدن می رفتن هرگاه که می, تو می و به کارهای بزرگی رو که انجام دادن مانند فراهم آوردن اون تندیس های بزرگ که یکی از اون تندیس ها هم در اون مرکز ما گذاشته بودیم بسیار هم زیبا بود چقدر هم برای اون کوشیدند و همه سوی دنیا رفتند آمدند و تلاشایشون رو ما همه گواه بودیم و هستیم. بعدش هم که به روی واپسین کار بزرگی رو که انجام دادند و آن چیزی بود که زمانی بود که اون میاندیشتند تا اینکه بنیانش گذاشتند همین دانشگاه جهانی کورش بزرگ که خب این آخری ها به شکل یک چی بهش میگن یک اپ هم درست شد که روی روی سند مثلا موبایل ها و اینا تلفن های دستی هم میشه گذاشت و کار بسیار نیکی است بزرگی است و اونجا بر روی گرد میارند یه دانشنامه‌ایه دانشگاه است براستی و چه بهتر که بشه بیشتر و بیشتر و بهتر و بهتر از این بهره بود چیزی که به طور کلی میشه گفت حالا یه خورده پیرامون این و مسئله یه خورده بزرگتر و اون اینه که در این زمانه ای که ما هممون در اون داریم به سر میبریم و با چیزهایش که داریم میبینیم در سرزمینمون چه پیش اومده تا به امروز به کجا رسیدیم این بیابان اگه میشه بذارم فرهنگی که برای ما درست شده در این صدها وزاره های گذشته و همه ما که دستی در فرهنگ و دانش به گونه هایی دار داریم همه باید با هم همیاری کنیم و این نهال های فرهنگی رو بکاریم و هومر هم یکی از اینهاست که این نهال ها رو سال هاست داره میکاره خوشبختانه دارن به اصطلاح بالند، رشد میکنن درخت میشن و به هر روی من یکی که از ایشون سپاسگزارم و جایگاه ایشون در واقع در نزد همه ما هم در دل ما و هم در اندیشه ما هست و امیدوارم که بتونه سالهای سال به این کار نیک خودش ادامه بده و ما هم در کنارش هستم بله سپاس گذارم آقای کامران گرامی آقای شاین نجات هم خوشبختانه به ما پیوستند و شوربختانه چون در محل کارشون هستن اینجا دوربین ندارن فقط با صدا ما در خدمتشون خواهیم بود آقای شاهین نجات از کوششگران رونسانس ایرانی است چندین سالی که به همراه دیگر یارانشون در این زمینه کوشش میکنن کوشش خیلی خوب و موفق و من اینجا میخوام بگم که هومر آبرامیان شاید یکی از بنیانگزاران اندیشگی چون این تفکری به نام در واقع نوزایی یا رونسانس فرهنگی برای ایران بودند و میدانم که آقای شایی شناختشون چون پیگیر هستن در این مسائل در این زمینه خیلی بیشتره آقای شایی نجادی خیلی خوش آمدید شما میکروفونتون رو باز کنید و ما صدای شما رو بشنویم شما شخصیتی برام هومر آبرامیان رو چگونه میبینید؟ درود بر شما مانی گرامی و همچنین به دوست ترجمان جناب کامران جمشیدی و هممیانی که بیننده و شنونده برنامه هستند بازم پوزش میخوام که تصویر ندارم چون سر کار هستم ولی بر آقای دکتر کیانزاد هم در این پانل حضور دارم خدمت آقای دکتر کیانزادم درود میفرستم و عرضه اعترام دارم چون تصویر نداشتم متوجه نبودم بازم پوزش میخوام که بدون تصویر اومدم همچنان که گفتید سر کار بودم ولی هنگامی که پیام شما رو در پیوند با برنامه درباره هومر آب را میان شنیدم واقعا حیف آمد که چند دقیقه خدمت نباشم و در مورد هومر آنچه که سزاواره نگم هومر آبرامیان از دو جهت به نظر من بسیار شخصیت ارزنده و یگانه است نخست هومر همچنان که خودتون رو کردید از جاد صاف کنها و راهن کن های یک رستاخیز ایرانی یک رونسانس ایرانی یک موزایی ایرانی بوده از دست کمارا تا اونجا که من موقع که شبکه‌های ماهوارهی برقرار شد از دور با هومر آشنایی پیدا کردم بیش از 20 سال پیش و بعد کاراشو تقیب می کردم که دقیقا در همون خط فکری داره حرکت می‌کنه و راه می‌کنه که ما چندین سال بعد حالا زیر نام رنسانس ایرانی با دیگر دوستان و یاران یه مقدار سازمانی آفته عمل کردیم ولی کسانی مثل هومر انصافاً پرچمدار بودند برای اینکه برخلاف اکثر کنشگران فرهنگی و ببیج سیاسی از همون آغاز آدرس و درست پیدا کردند و از رفتن سراغ درمان دردهای ملی ما بر پایه تغییرات انیادی در نگاه ایرانیان به جهان پیرامونشون تغییر جهانبینی ایرانیان و برکشیدن فرهنگ ناب ایرانی زیر نام حالا فرهنگ ایران شهری فرهنگ ایران پیش از باستان ایران پیش از اسلام که همه اینها در حقیقت وقتی که به صورت فرموله کنار هم قرار گرفت اومد و یه جریانی مثل رنسانس ایرانی رو شکل داد علاوه بر این همر از این جهت پرچم‌دار جزء پرچم‌داران و جزء کسانی است که چند دهه زودتر این کار رو آغاز کرده بود. البته دومی که در مورد کومر ابرامیان بسیار بسیار به نظر من درخشانه ما از میان همیهنان غیر مسلمان زادمون مانند هم‌میهنان یهودی، بهایی مسیحی و یا همیهنانی که مربوط به برخی از مناطق مرزی ایران مثل هموطنان کنیم بلوج یا کرد بیشترین گرایشی که می‌بینیم بدون که شاید تعمودی درش باشه اظهار نظر کردم و پژوهش و تحریخ درباره اون کامیونیتی یا محدوده پیرامون خودشونه مثلا میگم آقای دکتر اوسپیان که چند پیش در درگذشت دو تا کتاب بسیار خوبی نوشته بود راجع مسیحیت در ایران و همچنین روابط ارمنستان و ایران ایشون به ایرانی ارمنی خب کار ارزندهی هم کرده بود کوششاش تو اون جهت بود ولی ببینید باز به نوعی اولابش گرفتار بود به اون کامینتی کوچکتری که در ایران زیر عنوان ایرانیان ارمنی زندگی میکنه همینو در مورای بیشتر همیهنان غیر داریم ولی هومر از همون آغاز افقش افق ایران بوده این تحت ایج اوام خودش تخت بنده. درگیری ها و گرفتاری های ارز خدمتون مثلا جامعه یا آشوری یا ارز کنم یک محدوده کرانمندی نکرده بلکه اون آغاز افقش افق ایران بوده نگاهش به ایران بوده و کند و هم که کرده و کشش هایی داشته همش درباره ایران ایران و ایران بوده این ویژگی اگر بی پیشینه نباشه کم پیشینه هست در نزد هم میهنان غیر مسلمان ما و غیر مسلمان زاده مادر است و از این نظر هم معمل بسیار بسیار کارنمش درخشانه. اقداماتی مانند راهدازی دانشگاه کروش بزرگ که حالا به دانشگاه تبدیل خواهد شد الان به عنوان یک آکادمی برای آموختن و آموزش دادن، در دامنه فرهنگ و اندیشه ای ایران آینای ای ایرانی تاریخ ایران یک آرزوی بود که هومر سالها با خودش داشت و در آغاز کوشید که به صورت تامین بودجه از ایرانیانی که امکان داره توان مالی خوبی داشته باشن این کار رو انجام بده یه مقدار چالش های بستر راهش بود ولی فکر می کنم در 7 سال گذشته با افزایش فنناوری و مسئله دیجیتال تقریبا این مشکل حل شد و اینکه حتما یک ساختمانی باشه و کمپسی باشه و دانشگاهی باشه و کلاسهایی باشه و تشکیلاتی باشه نظریهش تبدیل شد به اینکه نه چون ایرانیان پخشن در سراسر سر جهان این امکان برای همه فراهم بشه که بیاموزند و بیاموزانند و تکنولوژی در اختیار مست در خدمت مستر. و اینجوری تقریبا می شود گفت که هومر کامیاب شد که یکی از آرزوهاشو رو با موفقیت به انجام برسونه هرچند کامل هنوز نشده ولی برها در مسیر درست قرار گرفته هومر تو این اولین باری که من هومر رو دیدم چهره به چهره در کنفرانس رنسانس ایرانی که ما برگزار کردیم هومر رو دعوت کردیم ایشون از استرالیا اومد کنفرانس در 2014 در سان دیگوی کالیفرنیا برگزار شد. اونجا یه سخنرانی آتشین و بسیار بسیار پرشوریو رو همر انجام داد که هممیهنان بسیار برانگیخته شدن و اونجا در حقیقت من به توان سخنوری همر پی بردم چون ما افرادی داریم که بسیار آگاه و دانشمند هستند ولی توان بیانشون اون اندازه نیست هومر خوان بیان بسیار بالایی داره ورز این نظر خیلی خوب میتونه که جمعیت رو تحت تاثیر قرار بوده ای تو تمام این دو سه دهه گذشته که ایشون همیشه فعال بوده و هنوز هم هست حتی در هیته و دامنه مسائل سیاسی هم از همچنین استعدادی همیهنان ما بیشتر میتونستن بهره بگیرن از آن هنگام تا کنون همچنان با هومر در پیوندیم کار <تقال> میکنیم یه مدتی دلخوری هم حتا ایجاد شده بود به خاطر یه سوی تفاهمی ولی وقتی که دل افراد در یک جا باشه وقتی هماندیش باشن و وقتی بر روی یک قایق نشسته و به سوی یک کرانه دارن پارو می‌زنن هیچ وقتی دلخوری کوچک یا سوی تفاهم کوچک باعث نمیشه که پیوند ها گسسته بشه در حال ای کاش مثل هومر بیشتر و بیشتر داشته باشیم ای کاش در نسل نوع هومر بیشتری رشد بکنند و امیدوارم که هومر برای سالهای آینده همچنان نیرومند و توانمند خودش و انرژیش و زمانش و توانش در خدمت ایران و ایرانی باشه آقای نژاد گرامی در دور دوم گفتگو از شما و از دوستان خواهید میکنم که درباره دیدگاههای او برای ایران آینده در پهنه و گستری نوزایی سیاسی فرهنگی به اون اندازه که شناخت دارید سخن بگویید از شما بسیار سپاس و میروم خدمت آقای دکتر حسن کیانزاد آقای, آقای شای نجات هم اشاره کردم یکی از کارهای واقعا برجسته آقای همر آبرامیان تأسیس فرهنگستان کروش بزرگ هست که هم به صورت اینترنتی است و بسیاری از میهندوسان ایرانی، پارسی بویان ایرانی، آشهان فر و شکوه گذشته و اکنونی که در درون ایرانی هست و ربط به حکومت نداره در اونجا کار میکنند به راستی همطور که آقای نجاد گفتند هم آموزشگاه هست و هم جای آموختن و جای آموزاندن هر دوش حالا من در گفتگور که به آقای دارم اونجا بیشتر در باره این فرهنگستان سخن گفتیم آقای که شما اه، اه، اه، یه مقدر دورا دور آقای ممیان رو میشترسیم من از شما سپاسگوزرم که دعوت من رو پذیرفتید که بیایید و درمان یک انصار سیاسی نظر اون رو در باره یک فرهنگی بیا در خدمت شما بله درود بر سوران گرامی جناب کامران جمشیدی و همچنین شاهین نژاد و دوست عزیزمون جناب مانی عزیز خب این توجهی رو که از من کردید با شما هم سخن داشتم که در روی بگویم که من یک شخصیت فرنگی چونان شما و دوستان دیگری که امشب در اینجا تکشیف دارند که نیستم، اما خب در رابطه با عمر آببرایدان که همین هم خدمت خدمت ایشون دود بسیار دارم باید بگویم که بله من بیشتر به جنبه به خاطر که یک کنشگر سیاسی هستم. اما یک کنشگر سیاسی پان و این دارای بیانی است که در این بیش از نزدیک 60 سال گذشته که با نحصت پان آشنایی پیدا کردم خب این نحصت باید گفته بشه که برآمده منشت گرفته از تاریخ و فرهنگ ملی ما تاریخ فرهنگ ازارهی ملی ما بود از دل تاریخ پانیرانیست همواره در واقع میگویند برخواسته و پانیرانیست یک چیز نیست که کسانی آمده باشند و ساخت و پرداختی داشته باشند وجود در واقع داشته است بنابراین که کیه و اونسور در ریشه ای و بنیادینش، وجودش، فرهنگ و تاریخ ملی ایرانیانه و بر این پای است که به ما در حضرت همون روزهای نخستین مثل کودکستان و تدستان آموزش فراگیری واجه های فارسی بود در همون نقطه های نخستین این واجه بنده به گونه‌ای شده بود که به گونه توبیخ باید بگوین می شدیم که به جای بنده ما بنده کسی نیستیم بلکه من و در واقع منهایی هستیم که روی پای خودمون استواری استوار است. بنابراین و بعد هم در ارتباط از نظر جنبه سیاسی این است که بر روی این سرزمین آنچه که از میهن عزیز ایران زمین امروز در درازای این تاریخ چند ساله باقی مانده و بعد از یورش های تازیان، بغل و ترکان خب آنچه که این کشور رو این ملت رو سر نگاه داشته جز این فرهنگ و تاریخ ملی ما که میتوان گفت که پادزهری بوده در برابر آنچه که دیگانگان خواستم این کشور رو در واقع همواره مورد یورش قرار دادن. بنابراین در راستای و امروز هم در این چه سال گذشته آنچه که توانسته به گونهٔ یک اهرم توان و توانمند سیاسی بر ضب اشفالگران جمهوری اسلامی و گران جمهوری اسلامی در واقع کمک به ملت ایران مردم ایران بکنه خب باز هم همین تاریخ و فرهنگ میهنه و در این راستاست که در درازهای تاریخ چند هزار ساله گذشته و به که تاریخ پس از انقلاب مشروطیت ایران بعد تاریخ ایران سلطنت بگوییم که تهلوی ها و شاه بزرگ خب این جنبش مدرنیته و تنقلی خواهی و خیلی ساره ایران سازی و یا رونسانسی که به وجود آمد از همون منگام آغاز کردید و در این راستا بود که دانشمندان ایرانی و ایران پرستان ایرانی در این راستا کوشش بسیاری برده بودند. و به همین چشم جناب هومر آبرامیان هم یکی از این شخصیت ها در این راستا هستند که به ویژه در چارچوب یک چنین جنبش جنبش ب رونستانس ایرانی گام برداشتند و گام برمیدارند و این یه مسئله است و مسئله دیگرم این است که تنها کنشهای خودشون رو در یک چنان چارچوبی محدود نکردند بلکه خیلی ساده من اتفاقا حالا در دور دوم اشاره بر این خواهم داشت که بویژه استوار بر این فرهنگ و نشرت گرفته از یک شناسه ملی در رابطه با رویات های سیاسی ابراز نظر میکنند. خیلی توانمندانه خیلی دلیرانه که من در دور دوم به این مسئله خواهم پرداخت سپاسگزارم. سپاسگذرم. من میخوام با اجازه شما دوباره برگردم آقای شاهین نجات چون باید برگردم سر کارشون. نظر ایشون رو بپرسم و بعد وقتشون آزاد باشن که بتونم به کارشون برسن آقای نژاد گرامی شما میدونید که راه طولانی که راه بسیار بسیار درازی که ما در پیش داریم برای تغییرات اساسی و بنیادین در فرهنگ ایران به عمر یک نسل و دو نسل و شاید ده نسل رضایت نده یک طولانی طولانیز برای اینکه 1400 سال اندیشه ما رو، فرهنگ ما رو، نگاه ما رو به جهان، هستی ما رو مشارک کردند و دگرگونه کردند، هویت ما رو دستکاری کردند، یک هویت جعلی به جای هویت واقعی ما ارائه دادند و با تعویض حکومت‌های همچون حکومت جمهوری اسلامی همه چیز بلافاصله تغییر پیدا نمیکنه البته شتاب خواهد گرفت بیگوان اگر حکومت درست مرد و حسابی برگوزده مردم سرکار بیاد این راه طولانی رو خب نیاکان ما هم داشتن فردوسی داشته خیام داشته رازی داشته ابن سینا داشتن هر کدوم کم یا بیش این راه رو پیمودن و الان رسیده به کسانی که زنده هستند و دارن می همچنان که این راه رو هموار بکنن. چون چشمانداز آینده رو چقدر نیازمند کسانی همچون هومر آبرامیان می‌دانید. بفهمید. میکروفونتون لطفاً باز کنید. بله. بمانی گرمی صدای منو دارید؟ بله الان دارن بفهمید. بله صدای شما خب میخوام ده صدای من رسوا هست. بله بله یکم بلندتر هم اگر بیشه صحبت کنید سپا... خب الان صدای شما رو ما ندارید. الان صدای من خوبه مانی گرامی بله الان خوبه ادامه بدین امیدوارم پرسش من رو شنیده باشید چون گویا اینترنتتون دارم جای که هستی خب پس شاید گرامی اگه صدای من رو میشنوید بگذارید همین پرسش رو من از آقای کامران جمشیدی بپرسم آقای جمشیدی گرامی شما همینطور که اشاره کردم میدانید که یک راه طولانی و دراز درازدامنی پیشاروی ما هست برای رسیدن به خود تازه میخوایم برسیم به خودمون و خب یک راه طولانی هم پشت سر ما بوده شما نقش آدمهایی همچون آقای هومر آبرامیان رو در این راستا چگونه میبینید باشه حالا میخوای پیش از این که من آغازه به صحبت دوباره بکنم چون شاهین برگشت اگر شتاب داره و میخواد بره میخوای یک بار دیگه از ایشون بپرسی اگر حالای نجات شما صحبت کنید ببینیم صدادتان هست نه نه خیلی خب مشکل تا شباید آه... البته ببینید حالا هم میتونیم ویژه در مورد هومر گپ بزنیم و هم اون کاری که کار بزرگ فرهنگی که هومر و هومرها دارند و داریم میکنیم چون از دید من همه اینها خوب است که با هم در پیوند باشند کاری بزرگ کاری نیاز برای ساختن ایرانی دوباره نیاز به کار بزرگ فرهنگی است حتی کار من گمان می همه ما که کار فرنگی می کنیم دستیکم کمی رو میدانیم و بهش باور داریم که برای ساختن یک کشور و یک همبودگاه جامعه و به هر روی اون, اون تدبیر یا خرد یا سیاستی که برای پیش برده کارشان پیش بیبره یا به زبانی کارهای سیاسی هم باید فرهنگ اون جامعه درست باشه سیاست برخواسته از فرهنگ است، فرهنگ برخواسته از جهانبینیست یا باورهای اون مردم و این وقتی من میگویم باور این باور شامل خیلی چیزا میشه حتما مسئله دین یا این چیزا نیست چون ما تا صحبت از باور میکنیم فوری نگاهمون و توجه خیلی میرین به سمت یک فدیدهی ای به نام دین غالب خب دین هم گناه باور است اما باورهای کلی رو میگویم. اه ما همونجور که خب حتی جنبش نوزایی یا رنسانس نامش هست و ها یا نوزایی ها یا بازیابی ها نام های گوناگون روی این جنبش ها هستش که رو سوی ایران رو به سوی ایران شهر داره و پا گرفته از اون فرهنگ بنیادین و اساسی ایران و ایران شهری که هومر هم همچنان بر اون آغاز کرد و همچنان بر اون استواره و میگم چون سالها بر روی همه با هم کار کردیم و میدانیم بیشن خودش یک زرتشتی است عزیزگاه من چون با گذیرش خودش هست و زرتشتی هم از دیدگاه من به هر روی برخواسته از اون فرهنگ بنیادی نسبت در پیوند با زرتشت و زرتشتی و پیرامونون قبقلی گفتگو میشه کرد اینو به زمان دیگری با هم میگذاریم اما چیز دیگه ای که من به هر روی اینجا میخوام به عنوان یک کنشگر فرهنگی در درجه نخوست این رو با همه کسانی که در این زمینه کار میکنیم برادران، برادرانه، دوستانه و مهربانانه در میان بگذارم که کمی مدارامون با هم بیشتر باشد، بهتر باشد. من میدانم که بسیاری از برای نمونه شاین گرامی یارا من نمیدانم آن مورد چه بوده است. یک کش برداشت یا سوء تفاهمی ممکنه بین آدم ها پیش بیاد ولی اگه ما یه خود به قول قدیمی ها یا حالا تازی سهی ساعت داشته باشیم بزرگ بیاندیشیم هدف رو همه با هم حد دست کم هدف رو یکسان ببینیم خب همه از راه های در واقع شاید گای وقت موازی هم دیگه ولی به هر روی به سمت هدف مشترک داریم حرکت میکنیم و میخوایم حرکت کنیم خیلی وقت است با یک برخورد شاید کمی شتابانه کمی از روی آشفتگی های فکری یا برخی زمان ها خشم هایی که خودمونم نمیدونیم از کجا میاد بیرون شاید با هم برخورد بکنیم و این خب به همه آسیب میرسونه و به این راه کلی آسیب میرسونه این رو میذاریم برای برنامه دیگری چون الان برنامه در مورد عمر است ولی به هر روی هومر هم همه ما بالا پایین خودش داشته بود داره و امیدوارم که چیزی که شاهین هم گفت همچنان این نیرو توانی که همیشه در هومر بوده و به راستی سخنوره و به راستی می‌تونه یعنی اون چیزی که ما کم داریم چون خود من و خیلی ها ممکنه با یک چگونه بگم من نمیتونم یه رفع به حیجان و وجد بیام همیشه <تصفيق> این به گونه آرامش درم هست ولی هومر میتونه به وجد بیاد و به وجد بیاره یعنی اون نیاز هست چون ما هم باید به هر حال این احساس ما باید گاهی وقتا درمون قلعان کنه و حتی حتی بخوام بگم در این مورد گاهی خشبگین هم بشیم و اینکه چرا چنین شده چرا ما چنین هستیم اون خشم مثبت خشمی که آفریننده است نه خشمی که در واقع آزار رساننده است اون خشمی که آغازگر در واقع یک تحول است یک تکامل است که بعد به های تکامل بیشتر می‌انجامد اون خشم مثبت رو ایرانی نیاز دارد تا به طبانت دوباره از نو بسازد روی پاهای خودش بیستد روی فرهنگی پربار خودمون بیستد نکات مثبت فرهنگی رو بکشیم بیرون دیگه حالا عوستاست گاتاست این هست آن هست مهم نیست از این میان اون برجسته ها رو اون خوب ها رو اونهایی که هممون برش موافقت داریم اونها رو بکشیم بیرون و بر پایه اونها فرهنگمون رو و کشورمون خودمون رو در درجه نخست و بر اساس خودمون آنچه که هستیم به بیرون باستاب بدیم فرهنگمون رو بسازیم بر اساسمون سیاستمون رو بسازیم و و کشورمون و جهان رو جهان به نظر من به فرهنگ راستین ایرانی و ایرانشهری نیاز داره و میبینیم دیگه چی داره در دنیا پیش میاد بنابراین باز هم بر میگردم به هومر که هومرجان جان دستت را می فشارم و همچنان با شما هستیم و با هم به پیش میریم و دیگه امیدوارم هم پرسش دیگه داشته باشید در خدمت هستم بله یک دنیا سپاس از شما آقای کنرهای جمشیدی نازنی ببینید دوستان ما میراث بر وارث یا مرد ریگ داشته ویجی هستیم در ایران ما در واقع در ارسیهی ویرانی تباهی اندوه شکست و فروپاشی اخلاقی رو از گذشته خودمون داشتیم و داریم و الان با مردمی روبرو هستیم با کشوری و مردمان یک کشور به نام ایران که گرچه گوهر و سرشتی ایرانی دارند، گوهر و سرشتی پاک دارند و میل به نور و روشنایی و بهزیستی دارند اما دوچار فروپاشی اخلاقی شدند. ما میراث‌بر یا میراث‌بر در واقع ویرانه‌ای هستیم. فرهنگ ما نیمه ویران شده زبان پارسی ما نیمه ویران شده داشته های فکری ما نیمه ویران شده از نظر اقتصادی و چیزای دیگه نمیخوام سخن بگم که اون رو دیگه همه بهتر از من میگونم اخلاق ایرانی را نیمه ویران کردهاند و برای جلوگیری از تمام جرایی این ویرانی ما نیاز به واقعا یک ارتش بزرگ روشنگران و زحمتکشان داریم که کار بکنند. بگویند بنویسن چون کار فرهنگی هم شما بهترین سخنان رو بگید، فقط یک بار بگید، تاثیر زیاد نیست. باید مرتب دائما باید این بازاورد بشه، تکرار بشه و گفته بشه تا به جزئی از درون ما، از زمیر ناخداگاه ما، ناخودآگاه ما تبدیل بشه. کاری که هنر ابرامیان و همراهان او کرده در گذشته و امروز و همچنان ادامه خواهند داد برای جلوگیری از ویرانگی کامل در ایران است. این گام نخسته که شما جلوی ویرانی را بیش از این بگیری و نگذاری ویرانتر از اینکه که هست شود. دوم، بازسازی و نوسازی در عصه فرهنگ، زبان، آین، نگاه، جهانگری، مردم دوستی و همه اون چیزهایی که ارزشهای انسان مدرن هست، انسان شهرنشین هست و ایرانی ها کم یا بیش در گذشته تاریخ خودشون دارنده این ارزشها بودند گاهی در بالا و در اوج گاهی در حزیز اما همباره گرایش داشتن به این قضیه ارزش کسانی همچون هومر آبرامیان در این است که با وجودی که خرجینشون پر است جیبشون خالی است دستشون تویست، اما از جان خود مایه میگذارند، عمر خودشون رو مایه می‌گذارند تا بتوانند جلوی ویرانگی سراسری رو بگیرند و در راه بهسازی گامهایی بردارند و عمرآورامیان که الان بالای 800 سال سن داره و از نظر جسمی همه ما در چون سن و سالی زیادی رو از دست میدیم مجبور حتی برای اداره زندگی شخصی کار دشوار بدنی و نادلپذیری رو انجام بده و این سوای اون عظمت و بزرگی کاری که در اثر فرهنگ میکنه از این زاویه هست که ما واقعا با یک پهلوان زنده روبرو هستیم با کسی که خودش رو بخشیده به کشور ایران به فرهنگ ایران واقعا تماما وجودش رو بخشیده اما هنوز نفس میکشه با دشواری و گام برمیداره گام های بلند و در میان ماست این ارزش ها رو باید بشناسیم و اگر این برنامه در ستایش زندگان نام داره در واقع در ستایش ارزش های است، ارزش های ایرانیست و پیشاهنگان و پرچمداران این ارزش ها که یکی هم آقای عمر آبرامیانه من از آقای کیانزاد میخوام بپرسم آقای کیانزاد. شما از یک عنصر فرهنگی از یک فرد کوشای فرهنگی مثل آقای آبرامیان چه انتظاری داره؟ چون ما فرهنگی ها اونایی که اهل فرهنگ هستن از شما اهل سیاست که اینا خیلی مرز قرمز و جدایی ندارن و هم آمیختن ولی با این همه یکی ویژگی کارش سیاست یکی فرهنگ ما همواره از شما چشم داریم که ای کاش اینگونه عمل کنید ای کاش آنگونه عمل بکنید و شما اهل سیاست از آدم های همچون آقای هومر آبرامیان چه چشم داشتی دارید؟ چه انتظاری دارید؟ اونا باید چیکار کار بکنن به باور شما؟ در خدمت شما می میکروفونتون بسته است آقای چنز. نخست اون خشمی رو که جناب جمشیدی ازش سخن به آوردند من فریادهای داد خواهانهٔ مردمان ایران و یا بگوییم شخصیتهایی که به هر روی دکار خش خشم بر ضد ستمگران اما در رابطه با عمر راب بگویم نخستین تماس من ایشون رو از نزدیک هنوز شوربختانه ندیدم امیدوارم که اگر که پا بر به اروپا آمادن و به کشور آلمان و شاید که در باقچه جناب مانی عزیزمون بتوانم یشون رو ببینم من 14-15 سال پیش یک نوشتار 12-13 صفحهی در رابطه یعنی در روزنامه کار ارگان سازمان فضاحیان اکثریت در رابطه با ستم ملی و ستم مضاعف و این مسائل شاید شش هفت ماه بسیاری بودند که بویژه خواستگاهای سیاسی چپ و من به عنوان یک پانیرانیست خب شیوه اندیشهوری ما شکی درش نیست در رابطه با این فرهنگی که ازش سخن به نیام میآورید چه که فرهنگ رنگین کمانی و هست و ما افتخار به این فرهنگ می و بعد هم زبان پارسی که بر روی جای خود داره چرا به خاطر این که خیلی ساده سونده سرای <تصفيق> میان عزیز اون ایران زمین فردوسی وقتی که میگه بسی رنج بردم در این سال سی و جب زنده کردم خیلی پارسی خب این امروز اون چیزی که خیلی ساده یکی از کسانی که به دنبالش هست هومر آبرام میانه و دیگر دیگری که به گونه همراه هستند و سخن به میام میابنن و بر پایه اون اسطلاح برام مده های برابرده های فرهنگی که بنیان استواره و نشقد گرفته از اون فرهنگی که خیلی ساده ما بگوییم که من به عنوان کنشگر سیاسی ملی باید بگویم که پای من اصولا قرار گرفته بر این هویت و در راستای این شناسه ملیست و این فرهنگ و فرهنگ فرهنگسازان کسانی مثل آبرامیان که بگوییم که نگاه دارنده هستند. در واقع خیلی ساده می توان گفتش که یه چنی شخصیت هایی های فرهنگی و فرهنگستان و این ایرانگرایی که بوان یک رونسانسه و جنبش اجتماعی از اش سخن بیاوریم. بیا ما باید بگوییم که بعد خیلی ساده پس از یورش تازیان به این سرزمین، تنها به این سرزمین که نبوده کشورهای دیگه بودند این دنیای اسلامی که از اش سخن به آورده می شود و مصر است و مراکش است و جزیره و این و اینها عرب نبودند اما امروز به این زبان سخن میگویند و بعد میگن دنگویای عرب اما مردم ایران ملت ایران کشور ایران بر جا مانده یعنی این که ما به یک زبانی سخن میگویم زبان پارسیست، است. این یک مثل است و... ازاز... آه... ببخشید شما فرمودید که یک نوشتاری داشتید در روزنامه کار در ارتباط با ملت ایران ولی این رو ادامه ندادید که چرا بله. سخن گفتید و ماجرات چه داشت به آقای ارتباطش رو بله، ارتباطش رو بیان میدارید بحانه این بود که در این نوشتار و این نوشتار رو من فکر میکنم چه افنی سال پیش بود که باز مسئله کاملا مهاتر دربارش، هنوز هم دربارش سخن گفته میشه عدیم برای جناب عمر آبرومیان فرستادم و پاسخ ایشون خیلی ساده بعد از چند روز آمد و با یک شیفتگی ایشون از اشتوخن به میان و گفت من به همه به اصطلاح توصیه میکنم که این رو نه یک بار بلکه دو تا سه بار بخوانم خواندنشم کاملا روشن بود به خاطر این که پرداختن من یک کنشگر سیاسی بگوییم که ایران به این مسائل در کنار بسیاری از نوشتارهایی که 6 ماه 7 ماه در اون روزنامه چاپ شده بود خب معلوم بود که یک استوار بر این فرهنگ فرهنگ رنگین کمانی ازش دو به میام میآوریم و اینکه اگر تبعیضی وجود داره اگر ستمی وجود داشت دا وجود داره در واقع این فقط در رابطه تو با کرد و آذری و اینا نیست که میخواهند به گونه‌ای کسانی از ازش بهره سیاسی ببنند. و بعد هم این نوشدار رو من در واقع با هر که سعودیه اخوان صالح من تو را دوست دارم پایان بردم بنابراین در آن هنگام این نویسدار در آن سالها در بسیاری از رسانههای گروهی در در آن هنگام که نیمروز و کیهان و در آمریکا این طرف اون طرف در واقع چاپ شد ولی بیانی رو که هومر آبراهیم ایان از این مسئله داشت من متوجه شدم یعنی اون اثری رو که خودم انتظارش داشتم که یک ملیگرا و یک شخصیت پرهنگی مثل غمر آبراهیم متوجه شده که کیامزاد در واقع این مسئله رو از یک زاویه دیگری بهش نگریسته این اون در واقع بگویم آشنایی بود که ادامه پیدا کرد که اکدون هم ایشون مرتب چیزهایی رو که دارن میفرستم من میفرستم اما یه مسئله دیگری هم که امیدوارم جناب ماری دو سه دقیقه دیگه وقت بده برای من مهمه این است که هستم کنشگرانیه کسانی که بگویی که در چارچوب مسئله فرهنگی بعد سخن از این به میان آورده می شود که ما به سیاست کاری نداریم. اما هومر آمرو بیان کار به سیاست داره و دقیقا هم اینچنین این باد باشه جوری دیگه نمیتونه باشه چرا خیلی ساده؟ یورش آوردن به این سرزمین بویژه در این چهل سال گذشته یعنی تازیانی و اشغالگرانی خیلی ساده. بال دیگر چهل سالی که بر این سرزمین حکومت میکنند و ملت ایران رو مردمان ایران رو برایشون ستم روا میدارند استوار بر این فرهنگ هومر آبرامایان خیلی ساده آمده این رو با سیاست یعنی ازش بهره برده من چگونه میتوانم یک کنشگر سیاسی باشم و در واقع نشأت گرفته است بگویم که آنچه که به نه تنها فرهنگ ملی است بلکه اصولا زندگی هزاره ملت ایران و چی امروز پیش آمده و همین دلیل هم هستی من اتفاقا یک نوشتاری از ایشون که در دسامبر 2016 زیر انبان خاموش بمانید و هیچ نگویی خواندم که بسیار تحت تاثیر قرار گرفتان و خب در اینجا هومر آبرامیان آنشه که بسیاری از سیاست ورزان کنشگران سیاسی بر زبان نمی آورند، آوردند. در آن هنگامی که مردم به در ارتباط با عرش و تظاهراتی که وجود داشت، هنگامی که خومه رو میگوید مردم فریاد برمی جوانان به ما آریایی هستیم، عرب نمی پرستیم. کاخ ست ستون حکومت ننگین دامن اسلامی را بلرزه در آوردن، ایشون انتقاد میکنه خیلی ساده بعد میگوید که شهزاد رضا پهلوی جوانان دلیر میهن آهوریایی را که با این فرحات های دشمن چکن در واقع خواست های خودشون رو برآورده کردند به باد نکوهش گرفتند با آن خروش دشمن شکن جوانان دلیل آهورایی را عرب ستیزی نام دادند اگر به ایشان اضافه میکنه که جناب شاهزاده میگویند اگر قرار بر اسلام ستیزی باشد بهتر است همین حکومتی که هست بماند این رو گومر آپراهیمیان نمیپذیره و بلی که خیلی ساده میگوید در پاریان یک چنین نوشتاری ما شاه و این مسئله بسیار بسیار مهمه ما شاه به هر پیشکار کار دیگره. دیگری را برای ایران میخواهیم هزاران پادشاه را میتوان فدای میهن کرد ولی زرمی از خاک میهن را نمیتوان فدای هیچ پادشاهی کرد این در واقع این سیاسته این درواقع اون چیزی است که اگر ما سخن از یک جنبش جنبشی که بتوان این حکومتگران اشغالگر این در واقع حکومتگران ضد ملی رو از عریکها قدرت شیطانی و زهاکیشون به زنی بزنی، بزیر بکشه خب همینه یعنی باید خیلی ساده ما رک روش و روشن با آشکارا آنچه را که میبینیم در یک جهت دیگری در واقع پیش میره باید بیان داشت و این کار رو خیلی ساده بومر آبراهیمیان انجام داده ایشون فرهنگ رو در این چارچوب بسیار گستردهی خودش که درد کرده و چیره بر این فرهنگ است اما آمده خیلی ساده ازش بهره میگیره و سیاست رو در این راستا پیش میبره. این اون چیزی است انتظاری است که به حال می ایران ایران گرایان از یک چنین خیلی صادق هم میگوین حومر در واقع به مانند یک اسطوره است درود بر شما خب ما شوروختانه آقای شاهین نژاد رو به علت اشکار اینترنتی از دست دادیم من با اجازه شما میهمانان ارجمند و شما بینندگان گرامی میخوام از زمانی رو که سهمیشون بود و نتونستن باشن بهره گیرم و از رو که سالها پیش برای همار آبرامنگ گفتم به عنوان پایان بخشی خوش برای این برنامه برای شما بخونم کم دیگه باشید و بشنوید سخن یک شاعر رو با یک میهندوست اسمش هست دوی پایداری و پیشکش به هومر آبرامیان از پیشوامان روشنگری از کتاب گزارش گمانشکن که مجموعی از سردای من. سینه هوا را چاک میدهم و میدهم میدبیم از روی خفتنگاه قدیسان از روی آرامگاه امامان از روی برگهای های پایزی کرباس زمان را می و به فراسویش می رویم از این باریکنا تا آن فراخنا روی ریسمان های ناپیدای کیهان می تا میوه تابان کهکشان دست مرا بگیر تا بدویم از این تاریک نا تا آن روشنا شانه به شانه هم بیا نازنیم میدویم میدویم از روی کتاب‌های مقدس از روی هرچه ضل الله و آیت الله از روی بلاحت کهن از روی سادهباوری کهنتر سنگلاخ نفسگیر است سنگ ها اما هبابند پس میدویم از روی نام های آسمانی از روی آیات و از روی احادیس و میکائیل از روی فرشته ها و ازرائی از روی تذکره ها و عباطی حتی از روی گذشته خیش تاریخ یافته ایست از کلافی خونین از روی اینها میدوین باید به خود برگردین مانند پرتوهای پراکنده که به خورشید باز میگردن و خورشیدهای پریشان که به کهکشان و کهکشان شکسته که به ساغه نور میدویم میدویم تا افق پیشاروی آنجایی که باید دوباره آغاز شویم گذشته را چون گندیده به موزه میسپاریم آینده را چون شعری ناصروده در شیشه الکل میخوابانیم به تنها سرودی که رأی میدهم آواز توست و تنها پرچمی را که برمیافرازم، شادی توست یاره هزاره اکنون تمی بچرف تا مگس حدیث خان را از روی آهنگ باربت پس بزنیم اغرب چنگ فرو کرده در دل را برکنیم مغبره را چون قبار از سیمای سرزمین فوت کنیم چنگال دین را از پیکر فلسفه بیرون کشیم اکنون بال به بالم به مال شاهین گسترده بال او بالا بلند بلندای الوند پرواز خون تا فراز دماوند بپر بپر از روی این زمان خورده که زیر باران مانده بپر. از روی آن خدای نمکشیده در مه از روی عجل الله تعالی فرجه و شریف که مقرور در گند ناز، از روی ملهان بیپارو بر دریای خون بپر از میان شاخه های آویزان شعر در کیهان و از میان آویز یخ در باورها، بپر، بپر، بپر، شاهین گسترده پر خوشه خوشی در دهان تو رخشانتر من در دهان گرم افق افشانتر گویی سیمور بر دهان تو گویاتر من بر بالهای افق پویاتر بپر، بپر با سپاس. و تا برنامه دیگر